ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به صحبت خیردمندان از آن محتاج ترند که خیردمندان به قربت پادشاهان. پندی اگر بشنوی پادشاه در همه آلم به از این پند نیست، جزب خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست.